گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوز مسلمان نشود رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشدمه و انسان نشود گوهر پاک به باید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود اسم اعظم بکند کار خدای دل خوشوار که به تلبیس و یل دیو مسلمان نشود ایش میورزم امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود دوش می گفت که فردا بده همکام دلت سببی ساز خدایا که پشیمان نشود حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را تا دگر خاطر ما از تو فریشان نشود ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود